دوستان خوبم به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. در این کلاس ما برای بار دوم نامه پولسه رسول رو که دوم قررنتی نام داره بررسی می کنیم. کلیسای ما هم مثل کلیسای قرانتوز پر از مشکلات و بعضی ها هستن که با شبان موافقند و بعضی ها هم نه چیزی که ما باید از پولسه رسول یاد بگیریم اینه که یک خادممه مسالهگر باشیم، تا بتونیم باعث بنای پیروانه مسیح باشیم. ما مطمئنیم که این درس ها به شما کمک میکنه تا ایمان و دانش شما رشد کنه. از خدا میخوام که گوشهای شما رو باز کنه تا اون چیزی رو که دوست داره یاد بگیرید بشنوید. حالا معلم ما اینجاست و در این جلسه درس مهمی رو میخواد به ما بده. نامی دوم پولوس به قرنتیان در مورد خدمتیه که خدا دوست داره تمام ایمانداران اون رو تجربه کنن. در این مطالعه تمرکز ما بر روی شفافیت خدمته حالا به جملات بزرگی در مورد خدمتی که خدای نجات دهنده ما برای ما در نظر گرفته گوش کنیم او به همه ما میگه که باید به این موضوع توجه کنیم که همه ما باید شاگرد مسیح بشیم اگر ما عقل خود را از دست داده به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست چون میدانی مگر یک نفر به خاطر همه انسان‌ها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه او زیست نماید که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی‌کنیم، گرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم، به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خاند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بیگناه بود ولی خدا به خاطر ما او را بیگناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید، درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند. متنی که خوندیم از باب پنج آیه سیزده تا باب شش آیه یک بود. خلوس رسول وقتی نامه خودش به رومیان رو می نویسه، یه شاهکار الهیاتی به ما میده وقتی نامه اول خودش به قرنتیان رو می یه شاهکار الهیاتی شبانی رو به ما میده و به ما نشون میده که اگه ما شبان هستیم چطور میتونیم با مشکلاتی که توی کلیس داریم برخورد کنیم اما وقتی که پولس نامه دوم خودش رو به قرنتیان می او شاهکاری در مورد خدمت به ما میده این خیلی ضروری بود چون در شهر قرنتوس کسانی بودند که اعتبار پولس در مورد رسالت او رو زیر سوال برده بودند این قرنتیان اعتبار خدمت پولس رو به چالش می‌کشیدند پولس در اول قرنتیان بیشتر به کسانی راهنمایی میده که خودشون رو متعلق به او میدونستند ولی در دوم قرنتیان او با کسانی صحبت میکنه که او رو نقد کردند و اقتدار او رو زیر سوال بردهند شاید به این خاطر که اونها چیزی رو که پولس در اولین نامش نوشته بود دوست نداشته. ما باید از قرنتیان به خاطر مشکلاتشون تشکر کنیم چون با توجه به نتایج مشکلات اونها ما یک شاهکار الهیاتی شبانی یعنی اول قرنتیان رو در اختیار داریم همچنین باید از قرنتیان تشکر کنیم که اقتدار پولس رو زیر سؤال بردن چون با توجه به نتایج این انتقاد ما این رساله فوق‌الاده در مورد خدمت رو در اختیار داریم در دوم قرنتیان هست که میفهمیم خدمت واقعا چیه و اعتبار خدمت در چی هست پولس این نامه رو به بهترین شکل می نویسه و در مورد خدمت راهنمایی میکنه او در مورد وظیفه خادم، کارهای خادم، تبدیل خادم، برتری خادم و صلاحیت خادم برای ما می نویسه. پولوس وقتی در مورد خدمت صحبت میکنه روی صحبتش فقط با شبانها نیست گرچه یعنی صحبتهاش اونا رو هم در بر میگیره و به اونا هم راهنمایی میده پولس با این دید صحبت میکنه که تمام ایمانداران خادم هستند. دید پولس اینه که هر ایماندار نجات یافته ای خادم عیسی مسیحه که اونها رو نجات داده. پولس به افسوسیان میگه که ما توسط فیض نجات پیدا کردیم. ما توسط هدیه ایمان که خدا به ما داده نجات پیدا کردیم و نه توسط اعمال. یعنی نجات ما در گروه هیچ عملی نیست. پولس در افسوسیان با به دو آیه ده میگه که ما برای کارهای خوب نجات پیدا کردیم طریقی که خدا مهیا ساخته تا در اون گام برداریم به عبارت دیگه خدا خدمتی رو برای ما در نظر گرفته خدا کار میکنه و میخواد ما هم این کار رو بکنیم حالا این کارها باعث نجات ما نمیشه ولی اینها نشانه نجات ما هستند. پولس به افسوسی میگه دلیلی که همه ما یک ها به کلیسا میاییم اینه که تا مقدسان را برای کار خدمت آماده سازیم برای بنای بدن مسیح معنی این جمله اینه که تعهد خدمت به مقدسان داده شده که منظور پولس همه ایمانداران و همه پیروان مسیحه من معتقدم که این آیه 12 باب چهار آیه کلیدی کلیدییه که در دوم قرنتیان باید به اون توجه داشت متاسفانه کلیسا واقعا دید پولس از این کلمات رو درک نمیکنه. در این کلمات پولس به ما میگه که اعضای کلیسا باید بشارت انجیل رو به کل دنیا برسونن. شبانها ها و رهبران کلیسا هرگز برای بشارت به کل دنیا نمیدن. برای اینکه نشون بدیم که من چی میگم، فکر می کنم که امروزه رهبران کلیسا توسط شبانان به سمت عیسی هدایت نمیشن. خیلی از مردم بودن که من نمیتونستم به عنوان یه شبان با اونها ارتباط برقرار کنم. خیلیا هستن که با شبان صحبت نمیکنند، ولی با شما صحبت میکنند. خدا شما را دقیقاً در جای حساب شده ای قرار داده تا بتونید کسانی رو خدمت کنید که دیگران نمیتونن. حالا تمام کسانی که تولد دوباره دارن به خاطر خدمت یه مبشر یا خادم بوده که تولد تازه یافتن. غالباً یه شبان نیست که مردم رو به مسیح میاره. حتی در بیشتر موارد مبشری مثل بیلیگراهام هم نیست. غالباً از طریق خدمت مردم عادی هست که در محل کار و زندگی میتونن خدمت آشتی مسیح رو انجام بدن. این روشیه که خدا دوست داره انجیل ایسای مسیح بشارت داده بشه. تا زمانی که ما دید دوم قرنتیان رو درک نکنیم، این اتفاق نخواهد افتاد. شکیده دوم قرنتیان اینه که همه ما خادمیم و به عنوان یک خادم نیاز داریم که کامل باشیم، تعلیم بگیریم، الهام بگیریم و برای بیرون رفتن و بشارت دادن به چالش کشیده بشیم. این چیزی که ما در دوم قرنتیان یاد میگیریم که یه شاهکار در مورد نحوه خدمت و اینکه خدا دوست داره ما رو چطور برای خدمت خودش آماده کنه. چند وقت پیش شنیدم که یه کلیسای دنبال یه شبان می گرده. این کلیسا نزدیک دو سال و نیم بود که به دنبال یه شبان میگشت و کسی که مسئول پیدا کردن شبان بود، حساب و قاطش تلخ شده بود. یه شب مدیر کمیته جستجو جلسه ای تشکیل داد و ای رو خوند که ظاهراً از یه متقاضی اومده بود. متن نامه اینطور بود آقایان مطلع شدم که هنوز کسی را به عنوان شبان انتخاب نکردی مایلم که درخواست خودم را برای این کار تقدیم کنم من بالای 50 سال سن دارم و مدت سه ساله که جایی معزه نکردم در بعضی جاها هم بعد از معزه مجبور به ترک شهر شدم چون آشوب و اختلالاتی پیش اومد باید اقرار کنم که من سه چهار بار هم در زندان بودم اما نه بهخاطر اینکه کار خلافی انجام داده باشم سلامتی من زیاد خوب نیست. با این حال میتونم از اوته خیلی کارها بر بیام. تمام کلیساهایی که حال معازه کردم کوچک بودن. با اینکه در شهرهای بزرگی بودن. من معمولا با رهبران مذهبی شهرهایی که معازه کردم خوب نبودم. در واقع بعضی هاشون منو حتی تهدید به مرگ کردند و به من حمله کردند. باید بگم که حافظه خوبی هم ندارم، حتی یادم نمیاد که چه کسانی رو تعمید دادم. با این حال اگه از من استفاده کنید، من تمام سعیم رو برای خدمت به شما خواهم کرد. خب، مدیر کلیسا از هیات جستجو پرسید، احساس شما نسبت به این مرد چیه؟ آیا باید از او بخوایم که شبان ما بشه؟ مردی از بین دیگران گفت، حال جسمی خوبی نداره، مشکلاتی داره، مشکل حافظه داره، زندانیم شده و چیزی یادش نمیاد. مگر شما دیوانه اید؟ کی به یه همچین مردی مثل این میگه که بیا و شبان ما بشو او رو رد کنید. مدیر کلیسا گفت کاری که شما همین الان دارید میکنید مثل اینه که پولس رسول رو رد میکنید اگه پولس رسول امروز میخواست شبانه یک کلیسایی بشه رزومه کاریش دقیقا همین طور بود علاوه بر سابقه و اعتبار ظاهریش که هر طور به نظر میرسیده پولس رسول بزرگترین خادمیه که کلیسا تا به به خودش دیده بزرگترین نویسنده‌ایه که در کلیسا بوده بزرگترین معلمی کتاب حال کلیسا به خودش دیده بزرگترین مبلغ، بزرگترین شبان و در مورد پولس همینطور میتونید میتونی ادامه بدید. پولس دقیقاً بزرگترین بود. همونطور که قبلا دیدیم، اگه شما باور ندارید او به شما میگه که توسط فیض خدا او موثرتر از همه رسولان دیگه بوده. زمانی که قرنتیان اعتبار او رو زیر سوال بردن، پولس از خودش دفاع میکنه. عیسی تعلیم داده بود که این یه شغل نیست، بلکه این قابلیته که باید به حساب بیاد. تنها گواهی که پولس به بدن مسیح ارائه میده خودش هست. پولس در جایی به قرنتیان میگه شاید بگویید که ما به خود ستایی پرداخته ایم. آیا ما مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارش نامه ها محتاجیم؟ بهترین سفارش ما شما هستید که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردمان را بخوانند و بفهمند. شما نامه سرگشاده ای هستید که مسیح آن را نوشته و توسط ما به دیگران رسانیده است این نامه با مرکب و بر روی تخت سنگ نوشته نشده بلکه نامه است که روح خدای زنده بر قلبهای انسانی نوشته حالا اون قسمتی رو که در ابتدای جلسه امروز خوندم به یاد بیارید در دوم قرنتیان باب 5 از آیه تا آیه اول از باب ششم پولس یکی از مهمترین قسمت‌ها در موضوع ماهیت انجیل وظیفه کلیسا و ماهیت خدمت به ما میده. در این قسمت پولوس انگیزه شخصی خودش رو در مورد خدمت معجزه آساش به ما میگه. من شبانی رو میشناختم که دعوت شده بود در کنفرانس انگیزه صحبت کنه. دنیای تجارت معمولاً کنفرانس‌های انگیزه میذاره. موضوعی که باید در موردش صحبت میکرد این بود: انگیزه محرک چیه؟ این موضوع خوبی بود. برخورد اونها با این قضیه اینطور بود. اونها به شبان میگفتن شما انگیزه ای هستید که مردم شبان بشن. ما می‌خوایم بدونیم که انگیزه شما چیه. این بهترین عنوان برای این قسمت از دوم قرنتیان یعنی باب پنجمه. چون اینجا پولس به ما میگه که انگیزه بزرگترین محرکی کتاب حال شناخته شده. من ایمان دارم که پولس یکی از بزرگترین محرکهای تاریخ کلیسای عیسی مسیحه. پولس در این قسمت به ما میگه که چطور ما انگیزه او هستیم. باید اضافه کنم چیزی که ما در جلسه قبلی یاد گرفتیم نشون میده که وظیفه خادم چیه و اصولاً خدمت چیه. پولس میگه که وظیفه خادم مساله هست. یعنی آشتی دادن. و ما باید متعهد بشیم تا خدمت مساله هر انجام بدیم و پیام آشتی بدیم. خدمت در یک کلمه یعنی مصالحه. پولس پولوس با ما در مورد رابطه خادم با مسیح صحبت میکنه. پولس رو متهم کردن که عقلش زایل شده. از مرحله پرته. واژه یونانی که برای متهم کردن پولس از اون استفاده کردن کلمه عجیب و غریب بود. منتقدان عیسی مسیح نیز از همین واژه برای توصیف طرز زندگی کلمه ابدی که جسم پوشید استفاده می کند. پولس پاسخ این اتهام را اینطور طور میده: شما راست میگی. من از مرحله پرد هستم. نقطه تمرکز من با شما فرق داره. من غیر عادی چون بر خودم متمرکز نیستم بلکه تمرکز من عیسی مسیح در این قسمت مشاهده میکنید که پولس چطور رابطه خودش با عیسی رو بیان میکنه پولس الگویه که تمام خادمین مسیح یعنی تمام ایمانداران باید از او تقلید کنند پولس مینویسه اول از همه شما باید درک کنید که همه شما در عیسی مسیح یک هستی به این معنی که اگه شما میخواین یه ایماندار یا خادم باشید بایستی یه اتفاق توسط عیسی مسیح در زندگی شما بیفته از تمام چیزی که پولس در باب 5 آیه هجده به ما میگه، معجزه آشتی کردن با خداست. اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خدا آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. پس چیزی که پولس به تمام ایمانداران آشتی داده شده صحبت میکنه، اینه که در ابتدا خدا و انسان یکی بودند. سپس انسان از خدا روی برمیگردونه و خدا هم از او. و روی گرداندن خدا از انسانی که خودش آفریده جدای این دو رو سبب شد این اساسی ترین مشکلیه که کتاب مقدس به اون اشاره میکنه ما در بررسی کلی کتاب مقدس چندین بار این رو در کتاب مقدس دیدیم بر اساس حرف های پولس این پیام خدمت وقتی عیسی بر روی صلیب مرد خدا با جهان آشتی کرد و اتهام گناه بر علیه گناهکار رو متوقف کرد پیام و خدمت مصالحه ما رو متحد میکنه که به سوی تمام مردم جهان بریم و بگیم خدا با شما آشتی کرده شما هم باید با خدا آشتی کنید اولین چیزی که پولس در این بخش میگه اینه ما توسط عیسی مسیح آشتی داده شدیم حالا این مرحله ای که به عیسی مسیح بستگی داره توسط عیسی مسیحه آیا شما میدونید که تمام چیزهایی که برای شما اتفاق میفته توسط عیسی مسیح و از طریق او انجام میشه بعضی از مردم برای نان و ماهی پیش عیسا میان و بعضی برای نجات پیش عیسا میرن اونها عیسی را نجات دهنده خطاب می کنند تا چیزی رو که توسط عیسی براشون آماده شده بگیرن. بعد پولس رسول قلبش رو به ما نشون میده و انگیزه ای رو که بزرگترین محرک تاریخ کلیسای مسیح رو بر می انگیزه به ما نشون میده. میخوام شما رو به چالش بکشم. تا به حال شده که کسی شما رو متهم کنه که شما عجیب و غریب هستی یا اینکه تمرکز زندگیتون به جای اینکه بر خودتون باشه بر مسیحه؟ اگر اینطور بوده پس مشارکت درستی با پولس و خود عیسی دارید اگه شما با خدا آشتی نکرده اید به وسیله مسیح میتونید دعا کنید و از او درخواست کنید دعا کردن یعنی صحبت با خدا از خود او بخواهید تا به شما کمک کنه که این حقایق رو درک کنید به او بگید که میخواهید پیرو او باشید ما عجیب ترین قسمت کتاب مقدس رو با هم خلاصه کردیم باب پنجم از دوم آیه 13 تا باب 6 آیه 1 پولس قلبش رو باز میکنه و تمرکز زندگیش رو نشون میده که همون مسیحه. برای پولس زندگی یعنی مسیح با این حال پولس یه پله بالاتر میره و در مورد رابطه خادم با مسیح صحبت میکنه. در آیه 17 او میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه هست. کسانی که در عیسی هستند خلقتی تازه هستند و همه چیز متفاوت خواهد بود. کسی که در مسیحه دیگه نگاهش به دیگران نیست همه چیز جدید میشه چیزهای کهنه از بین میرن و چیزهای جدید میان چون که او در مسیحه حالا معنی در مسیح بودن چیه یعنی شما میاید و توسط مسیح نجات خودتون رو دریافت می کنید و تمام برکات و مزایایی که دارید توسط مسیحه اما معنی در مسیح چیه خیلی از مردم وقتی میگن من تصمیم گرفتم که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده قبول کنم احساس نجیب بودن می کند. مهمترین مسئله این نیست که شما او را قبول میکنید بلکه مهم که آیا او شما را قبول میکنه ما اینطور میگیم من عیسی مسیح رو قبول کردم بعضیا میگن من تصمیم گرفتم که مسیح رو توی برنامه هم بذارم خب این هم خیلی نجیبانه است تا زمانی که شما به این موضوع فکر کنید که آیا عیسی میخواد که ما رو توی برنامه های خودش جا بده وقتی عیسی مردم رو ملاقات میکنه ما در انجیل میبینیم اول مردم او رو قبول کردن و از او دعوت کردن تا در برنامه هاشون باشه مثل پتروس در لغا با به پنج زمانی که پتروس از خدا دعوت کرد به قایقش بیاد و خداوند قایق او رو پر از ماهی کرد این تصویری از مرحله اوله توسط عیسی مسیح و شما از تمام برکات و مزایا بهره مند میشید چون شما مسیح رو در زندگی خودتون پذیرفتید و او رو در برنامه هاتون جا دادید با این حال یادتونه که در پایان داستان عیسی میگه دیگه ماهی سید نکن پتروس تو باید مردم رو صید کنی این چیزیه که من به خاطرش اومدم من به این دنیا اومدم تا مردم رو صید کنم منو پیروی کن و من به تو نشون خواهم داد که چطور مردم رو صید کنی پتروس قایقش رو رها کرد و ماهیهاش رو رها کرد شرکت سید ماهی زبدی رو ترک کرد و پیرو عیسی شد در آغاز داستان میبینید که پتروس عیسی رو وارد برنامه‌اش کرد اما در آخر داستان میبینید که این عیسی هست که پتروس رو وارد برنامه‌اش میکنه در ابتدای داستان شما پتروسی رو میبینید که توسط عیسی زندگی میکنه اما در انتهای داستان وقتی که پتروس ماهیگیری رو ترک میکنه و متحد میشه که پیرو عیسی باشه و مردم رو سید کنه، میبینید که او حالا در مسیحه. او در مسیحه چون او بخشی از عیسی شده و او بخشی از کاری شده که عیسی میخواد انجام بده. عیسی پتروس رو وارد برنامههاش میکنه. هنوز یه مرحله دیگه هست که پولس در این قسمت زیبا به اون اشاره میکنه و اون انگیزه خدمته. پولس مینویسه پس سفیران مسیح هستیم." این مسئله سؤالی رو در مورد انگیزه مطرح میکنه. انگیزه شما برای دعوت عیسی به زندگی خودتون و برنامههاتون چیه؟ انگیزه شما از قبول دعوت عیسی و وارد شدن به زندگی او و برنامه او چیه؟ این چیزیه که در این سطح سوم مطرح شده برای عیسی پولس اینطور میگه چون محبت مسیح بر ما حکم فرماس به من انگیزه میده من به این مسئله اینطور طور نگاه میکنم که اگه شما فرد آشتی داده شده ای هستی وقتی عیسی شما را آشتی داده دیگه نباید برای خودتون زندگی کنید بلکه برای کسی که شما را آشتی داده پس پولس به عنوان پیرو عیسی مسیح میگه انگیزه ی من اینجاست هر کاری که انجام میدم اون رو برای ایسای مسیح انجام میده. در این قسمت فوقلاده از کتاب مقدس پولوس رسول بزرگ سه مرحله از رابطه خادمین یا ایمانداران با مسیح رو بیان میکنه ما میتونیم این سه مرحله رو اینطوری خلاصه کنیم توسط مسیح در مسیح و برای مسیح همونطور که ما در دوم قرنتیان پیش میریم خلاصه کردن این شاهکار در مورد خدمت سختر میشه ولی من سعی میکنم بعضی از چیزهایی رو که پولس در مورد خدمت در این نامه میگه براتون خلاصه کنم. چندین بار شش باب اول کتاب دوم قرنتیان رو مطالعه کنید تا خوب درک کنید. اگه شما این کار رو بکنید متوجه میشید که پولس چیزای زیادی داره که در مورد شفافیت خادم به ما بگه. متوجه میشید که پولس میگه اولا این خادم گنجینه بزرگی داره که در او زندگی میکنه و اون گنج مسیحه. وقتی خادم تبدیل به شخصی آشتی داده شده میشه وقتی که از طریق مسیح با خدا آشتی داده میشه، او به شناخت مسیح نائل میشه. او وارد راهی میشه که نگاهش بر مسیحه. او مسیح رو در قلبش نگه میداره. وقتی او مسیح رو در قلبش نگه میداره، به چیزی شبیه میشه که در خودش نگه داشته. او تبدیل به کسی میشه که خیلی شبیه مسیحه. وقتی این اتفاق میفته، و گنج بزرگ مسیح رو در ظرف زمینی خودش دریافت میکنه، پولس میگه که شبیه یه گلدون سفالی کوچک میشه او فقط یه ظرف زمینیه یه ظرف سفالی معمولی ولی در این ظرف سفالی معمولی گنج بزرگ مسیح قرار داره. خدمتی که او به اون فرا خونده شده اینه که وقتی شبیه مسیحی میشه که در او زندگی میکنه با شفافیت اون مسیح رو به دنیا نشون بده. پولوس میگه این وظیفه که باید انجام داد خدا اجازه میده تا فشارهایی به این ظرف سفالی وارد بشه. میبینید که پولس مکرر از باب یک تا شش به این موضوع اشاره میکنه که در زندگی خادم امتحانات و سختیهایی وجود داره اما نکته ای که پولس در آزمون ها و سختی ها بر اون تاکید میکنه اینه که در درون این ظرف سفالی کوچک گنج بزرگی وجود داره ولی جهان اون ظرف سفالی کوچک رو مثل تمام ظرف های سفالی دیگه میبینه خدا میخواد که جهان بفهمه این ظرف سفالی چقدر فرق داره این ظرف سفالی کوچک درونش یه گنجه که درون زندگی میکنه حالا فکر میکنید اگه خدا اجازه نده این فشارها به اون ظرف سفالین کوچک وارد بشه از کجا میشه فهمید که درون اون ظرف گنج وجود داره یا نه چون گنج ایسای مسیح درون اون ظرف هست این خادم ظرفیت و سرچشمه ای داره تا بتونه توسط اون فشارهایی رو که بهش وارد میشه تحمل کنه بعد مردم به اون نگاه میکنند و میگن. ببینید چه طاقتی در مقابل اون فشار داره ببینید چطور به این فشار پاسخ میده باید چیزی در اون ظرف اون سفالی کوچک باشه تا اون رو قادر بسازه تا پاسخگوی این فشارها باشه همونطور که پولس نویسه اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده همونطور که این شاهکار رو در مورد خدمت می میخونیم شما متوجه میشید که پولس نمیخواد چیزی در مورد متدولوژی علم اصول گفتار در روش و اسلوب خاص یا روش شناسی صحبت کنه. او نمیخواد در مورد راه صحبت کنه. او نمیخواد در مورد موزه زیرکانه صحبت کنه. پولس نمیخواد کاری کنه که امروزه ما در سمینارهامون میکنیم. او نمیخواد به ما الهیات یا زبانهای اصلی کتاب مقدس را آموزش بده. پولس اصلا به این چیزها توجهی نمیکنه. به نظر پولس اهمیت خدمت در شبیه مسیح بودن. و شفافیت در این شباهته یک مثال از جایی که پولس این رو بیان میکنه در باب 6 بعد از اینکه مینویسه همه ما با همدیگه با خدا کار میکنیم به دنبال این قسمت فوقالعاده در باب 5 پولس مینویسه که چطور میتونیم ثابت کنیم که خادمین خدا بلکه در هر چیز شایستگی خود را نشان نشان میدهیم آنگونه که از خادمان خدا انتظار میدود با بردباری بسیار در زحمات در سختی‌ها در تنگی‌ها در تازیانه ها، در زندانها در حجوم خشمگین مردم در کار سخت در بیخوابی و در گرسنگی مشاهده میکنید که استفاده پولوس از حرف اضافه در در این آیات چگونه هست. حالا پولوس این حرف اضافه را عوض میکنه اینجا میگه با پاکی با معرفت با صبر با مهربانی با روح القدس با محبت بیریا با راسگویی با قدرت خدا با اسلحه پارسایی به دست راست و چپ. بعد میگه در عزت و ذلت، بدنامی و نیکنامی گویی گمراه کننده اما حقیقت را میگوییم گویی گمنام اما شناخته شده ایم گویی در حال مرگ اما هنوز زنده ایم گویی دست خوش مجازات اما از پادر نیامده ایم گویی غمگین اما همواره شادیم گویی فقیر اما بسیاری را دولتمند میسازیم گویی بیچیز. اما صاحب همه چیزی این چیزی که پولس در باب ششم در مورد اون صحبت میکنه اولا خدا اجازه میده طوفان در زندگیمون باشه خدا اجازه میده این ظرف سفالی کوچک در طوفان گرفتار بشه طوفان توصیف کننده مصیبت، احتیاج، رنج کشیدن، تا زیان خوردن و به زندان افتادنه پولس اینجا تجربه خدمت خودش رو توصیف میکنه تمام این فشارها بر ظرف سفالی کوچک پولس وارد اومده با این حال پولس اشاره میکنه تا بدونیم چطور باید با طوفان برخورد کنیم با پاکی با معرفت با صبر با مهربانی با روح القدس با محبت بیدیا با راستگویی با قدرت خدا با اسلحه پارسایی به دست راست و چپ اینجا سوالی پیش میاد چطور میشه در این جهان با پاکی با معرفت با صبر با مهربانی با روح القدس و با محبت بیدیا این فشارها رو تحمل کنیم. پولس اینجا به سرچشمه خودش اشاره میکنه. سرچشمه روحانی که میتونه به خادم برای مقابله با طوفان قدرت بده. این سرچشمه های روحانی اینها هستند. روح القدس، محبت بیریا محبت پاک، کلام حقیقت چون که کتاب مقدس رو میخونیم، خدا از طریق کتاب مقدس با ما صحبت میکنه. به ما این ظرفیت رو میده تا با سختی ها برخورد کنیم. با قدرت خدا اسلاحی پارسایی که در دست چپ و راست ماست میبینید چیزی که پولوس میگه اینه من یک ظرف سفالی کوچکم هر خادمی یک ظرف سفالی کوچکه اما بعضی از این ظروف سفالی ترک خوردن حالا امکان داره دنیا شما را تحسین کنه و فکر کنه کارهای ای که انجام میدین با قوت خودتون انجام میدین ولی خدا میخواد دنیا ببینه که شما یه ظرف سفالی کوچکید پس خدا اجازه میده تا فشارهایی بر شما وارد بشه. اما خدا به شما سرچشمه هایی داده تا بتونید به کمک اونها با مشکلات و فشارها مقابله کنید و نتیجه اش خدمت حقیقی و واقعیه. پولس در مورد خدمت معتبری که خدا میخواد به هر ایمانداری بده صحبت میکنه. چیزی که خدا میخواد من و شما به جهان نشون بدیم عیسی مسیحه. عیسی چیزی شبیه به این رو در به هفت آیات 24 27 گفته. او دو خونه رو به ما نشون میده که در کنار هم ساخته شدن و خیلی شبیه به هم هستند شما نمیتونید از ظاهرشون بگید که زیر بنای این خونه ها چطور هستند و اگر طوفانی بیاد چه اتفاقی برای اونها میفته وقتی که طوفان بیاد تازه متوجه فرق خونه ها میشید خونه ای که بر روی شن بنا شده خراب میشه و نمیتونه در مقابل طوفان مقاومت کنه خونه دوم که روی صخره بنا شده مقاومت میکنه و این به خاطر صخره زیر بنا است. این تفاوت بین اون دو خونه است. این نظریه چیزی رو که الهیات کامیابی نامیده میشه غیر میکنه. چون اگه خدا بخواد که مردمش همیشه در کامیابی باشن این چیزی که بر اساس تعلیمات پولس باید گنج درون ظرف سفالی کوچک رو به جهان نشون بده امکان پذیر نخواهد بود. پولس بارها تلاش میکنه که به مسیحیان گوش زد کنه که اونها باید با طوفان‌های زندگی مقابله کنند. و این تعهد خدمت اونهاست در همون متن پولس در مورد سرسختی و استقامت خادم صحبت میکنه به توضیح پولس در مورد تجربه خودش گوش کنید در برخورد با کسانی در قرنتس که ادعا میکردند پولس اعتبار خدمت نداره او اینطور میگه آیا آنها خادمین مسیح هستند من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف میزنم من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم یهودیان مرا پنج بار و هر بار سی و نه ضرب شلاق زدن و سه بار از رومیان چوب خوردم و یک بار هم سنگ شدم سه بار کشتی هم شکسته و یک شب و روز دست خوش امواج دریا بودم در مسافرت زیاد خود با خطر سیل و راه زنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرک مواجه شدم. من متحمل سختی ها زحمات و بیخوابی و گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالبا بدون خوراک و لباس کافی سرمایه سخت زمستان را تحمل کردم. همان همون طوفان که قبلا در موردش صحبت کردیم در زندگی پولوس به کررات اتفاق افتاده. زندگی پولوس مثل یک طوفان مداومه با این حال پولوس به ما میگه وقتی که این طوفان میان، من میتونم خودم رو به عنوان خادم خدا ثابت کنم. این چیزیه که به ما نشون میده چطور میتونیم خودمون رو خادمین خدا معرفی کنیم. مسئله جدی اینه که چطور میتونیم طوفان زندگی رو تحمل کنیم. خدا به من و شما سرچشمه هایی داده که میتونیم با طوفان زندگی مقابله کنیم. وقتی که ما این سرچشمه های روحانی رو داشته باشیم و به وسیله اونها با طوفان مقابله کنیم، خدمت واقعی رو نشون میدیم. چون مردم ما رو نگاه میکنن اونها بینند که مسیح از درون ما به بیرون میتابه و میگن میدونید این ظرف سفالی کوچک خودش به تنهایی قادر نیست که اینطور مقاومت کنه. باید چیزی درون این ظرف باشه که اونو مقاوم میکنه. باید گنجی درون این ظرف باشه. بعد وقتی که مردم به این نتیجه میرسن میفهمند که گنج ما مسیحه. پولس به من و شما میگه که زندگی ما باید تبدیل و شفاف بشه که تنها راهی که جهان می مسیح رو در زندگی های ما ببینه، چون که شیطان اونها رو به لحاظ روحانی کور کرده. این در زندگی پولس رسول صدق می کنه. تنها زمانی دنیا نمی تونه مسیح رو در زندگی پولس ببینه که به دست شیطان کور شده باشه. بعضی وقتها ما باید بپذیریم دلیلی که دنیا نمی تونه مسیح رو در درون ما ببینه، کور شدن به دست شیطان نیست، بلکه به این دلیل که درون جسم های خاکی ما گنجی وجود نداره. اول پولس در مورد تبدیل شدن یک خادم صحبت میکنه. بعد به ما میگه که خادم باید شفاف باشه. اما در مورد این موضوع اشتباه نکنید. پولس به ما میگه که این تعهد معتبر خدمت هر ایمان ایمانداره. خدمتی نیست که مععزه کنید، عضو کلیساهای بزرگ باشید، با جماعت بزرگی باشید، با اعضای زیادی باشید و راهکار داشته باشید که افراد زیادی رو بر روی نیمکت ها جمع کنی. همونطور که خدمت پولس رو میبینیم بدیهیه که او در مورد این چیزها صحبت نمیکنه. پولس به ما میگه که خدمت مهارت در موعظه کلام خدا نیست اعتبار خدمتی اینه که مردمی که ما رو می‌بینن کلمه خدا رو در ما ببینن پولس مکرراً به ما میگه که تعهد خدمت ما همینه بر این اساس پولس میتونه ادعا کنه که او هم خادم خداست آیا تا به حال نظر پولس در مورد ماهیت خدمت رو مطالعه کرده بودید و اینکه چطور میشه خادم بود ازتون میخوام دوم قرنتیان رو عمیقا و با تعمل مطالعه کنید. مطمئنا خواهید فهمید نمایی که پولس با الهام از خدا در مورد ماهیت خادم و خدمت ارائه میده چیه و خدای قادر مطلق میخواد که هر خادم مسیح چطور باشه. عزیزان مسئولیت چیه؟ به چالش کشیدن برای هر کدوم از ما که سفیران محبت خدا هستیم یعنی چی؟ از خدا میخوام که به شما خوشی رو بده که ب سمر بیارید و این سمرات خوب و خبرهای خوب رو با در میون بذارید تا دیگران هم از طریق شهادت ایمان شما با خدا آشتی کنن و بیاد داشته باشید که وقتی خدا از ما میخواد کاری رو انجام بدیم اون همیشه کمکمون میکنه تا اون رو انجام بدیم از اینکه در این جلسه با ما همراه بودید خیلی خوشحالم و حضور شما باعث لذت بخش بودن این درس شد اطمینان داریم که شما برنامه تون رو طوری می چینید که در جلسه بعدی هم همراه ما باشید تا به ادامه مطالعه رسالات پولوس یا نامه های پولوس بپردازیم. دعای اینه که در مطالعه کلام خداوند با ما کنید و فیزه کلام رو دریافت کنید. عزیزان از شما خدافزی می کنم تا کلاس بعدی خدا برکتتون بده و در دستان قدرتمند خدا و پرمحبتش قرار بگیرید.